ماظونم که که این یه مقاله است که میگن که بعد دست آقای ناصر پلو فهد روسی مقاله ای هست به شاهنامه و فرهنگ عامه این در این شاهنامه فرهنگ عامه من یه مقدار زیاد یادداشت دارم پنج زیر 5 و همه اینا اون رویی رو که از شاهنامه در فرهنگ عامه هست یادداشت کردم این یادداشت مثلا کتابی خواهد رو پ صفحه خلاووندم انشالله یه روزی توفیق بده که این کارو بتونم این رو منچ اما برای کنجره بهدوسی به درره دعوت کردن در پجا همون وقت هم که آمدم بعد اینجا منندار شدن در ژانویه هشتاد یه مختصری از این یادد رو در باب جادو و در باب خواب هر شاهنامه با تاثیر خواب و ترتیباتی که در باره خواب بودن و هم درباره افسون و افسون الهی و افسون‌های اهورایی و افسون آریمنی و اینا که زدم تمام اینا به دقت جمع آوری شده بود و من سخنانی کردم اونجا که بعدم استاد عزیز من دکتر یارشاتر گفتش که این فلان کس عیبش ای اینه که قدری یه چیزی میگه بعد ملتش نمیذاره میره <تص> منتظر بود دیروز من تسین گفتم استاد این تمامم چون شیش ما ما اینو در میزنم تمام نمیشه این است که فعلا به همین اندازه پور رو بنده نوشتم یادداشت‌های مربوط به جادو و مربوط به خواب رو و مقاله‌ای در ایران شناسی عرض کنم که شماره دو تابستان 1369 منتشر شد این تیراژ آپارای نسخه منه می خوام بدم به ایشون که زحمت به چند کنم برای دوستان این یک خب بوم من امروز می آمدن یک کتاب برای من از تهرون برسدن به نام گل رنج های کوهن مال آقای جلال خالدی مطلب مجموعه ده دوزه مقاله بسیار گره جاییه که که قبلاً علاقه شده در های مختلف درباره شاهنامه ای پیزید ایشون شاید تا مقاله دارن از اون بسط کنن کردند. یه خانومی هم مهربانی کرد یه مقدار باقالی پلو توی ظرف پلاستیکی گذاشته دوشتم و درش بسته بودن نوار آورچت هم زده بودن اینم دادم به ما که بیاریم اینجا بخوریم گذاشتیم کتاب نازنین ما روغن پستاد جلد لفاف فروشگی در اون دور و اینکه اون که قابل چیز نبود جام پر روغن شده بود پاک کردیم و ولی توی چیزی کی جنب لواش هم یه مقدار کرده تا هم وسط کتاب ما رو فاسد کرد و مهری که داشتن به هر حال این کتاب کتاب خوبیه و نشر مرکز که ظاهرا بواسطه مجله کل و این وازی است علید باشی چاپ گردید کتاب کتاب مو است یه مقداری مطالب مثلا فرض کنید که چند قطعه الهاوی شاهنامه رو اشاره میکنه و دلایل هم میاد و حالا خود اسمش که جالبه گفتنش یکیش همین مسئله به جشن بود که من درک کردم که میگه که به چه دلیل این دست بکینه شده اینجا یک همون بود و چیزای دیگه بعد نحوه استدلالش برای شناسای این قطعه ها اون بیشتر از همه با عرضشه برای اینکه نشون میده چه جور باید دقت کرد تا چیز یکی از مطالبش من اینجا بکنه میخونم برای اینکه خیلی خیلی جالب توجهه عرض کنم که میگه که در مقدمه شاهنامی که ما نخوندیم سپاس خداوند از این حرفا بعد میگه چو خواهی که آوی زهر بدرها سرندر نیاری به دامن بلا اینه که در کتاب افتدایی خوندیم و بیدت در گیتی زبد دستگار. پلان به گفتار پیغمبر از راه جوی بعد میگه چه گفتان خداوند تنزیل و بحی، خداوند امر و خداوند نهی؟ که من شارسانم، علیم درست، درست این سخن گفت پیغمبر است بباهیده هم این سخن راز گوست، تو گفتی دو گوشم بر آواز بعدش مطلب دیگری حکیم این جهان را چو دریا نهاد، برانگیخته موج از او تون با چو تو کشتی بر ساخته، همه بادمان ها بر یکی تهم به سان عروس بیا رافته چشم خروس محمد به اندرون با علی همون اهل بیت نبی و وسی اگر چشم به دیگر سرای به نزد نبی و وسی گیر جایی گر از این بدعایت من از چنین است و این دین و راه نیست میگه که دیگران بیت های فراغانی به این قطعه افضل که ارهاق بودن بیشتر آنها روشن است و دو قطعه میگه من یه میگه که قطع این این چهار بیت است که بعد از بیت هشتم بیت هشتم هست چه گفتان خداوند تنزیل و بعد خداوند عمر و خداوند نه میگه که که خورشید بعد از رسولان مه نتابید برکست موبک ده عمر کرد اسلام را آشکار بیا راه دیتی چواق بهار پس از هردوان بود، عثمان گزین، خداوند شرم و خداوند دین، چهارم علی بود، جفت بطول که او را به خوبی ستایت رسول، بعد میگه که که من چهارسانم علیم است. حالا میگه که بیت های هشتم و نهم هم، یعنی همون که من چهارسانم عدینت العلم و علی جن ترجمه این حدیث است که فرمودند احمدی در مدینه و علی بن باب یک نفر آمده از اهل تصنن و بیت هشتم و نهم این قطعه ها را از هم شکافته و چهار بیت بالا را به میان آنها وصل کرد. و سپس به ای که خاص بیشتر قطعات الحاقی است در مصرع دوم بیت چهارم دوباره سخن را به بیت نهم رفت. بعد میگه که شاعر پس از بیان حدیث مشهور برای تأکید بیشتر روی عقیده مذهبی خود تمثیلی می آورد از دریا شاعر فردوسی میگه نه اون که چار چیزه. دریا و هفتاد کشتی که اشاره به مذاهب و فرق گوناگون اسلامی است و سپس میگوید در میان این هفتاد کشتی یک کشتی میانه است که از همه بزرگتر و, و زیباتر است در آن کشتی محمد و علی و اهل بیت او نشسته اند هر کس بهش دارد باید به کشتی میانه دارد. یعنی به مذهب تشی ها اکنون چگونه ممکن است که کسی در بالا چند بیت در ستایش عبو و عمر و عثمان بگوید وثبت چند بیت پایینتر بگوید تنها کسی بهشت می رود که سوار کشتی تشیه وجود باشد که در واقع عملا گفته است که هر کس به کشتی مذای دیگر درایت کشتی او قرب خواهد شد و روی بهشت و رسیداریی نخواهد نخواددید. و یا چگونه ممکن است یک شیعی مذهب که با این حرارت از هر مذهب خود، تو میگوید و کشتی مظاهر دیگر را قرفشویی میگیرد پیش از آن بگوید عمر کرد اسلام را آشکار و یا درباره عثمان بگوید خداوند شرم و خداوند دین آشکار است که با این چهار بیت همه نظم و منطق این کته در هم می‌ریزد یک سوم چهار بیت مذکور خلاف عقیده مصافدروسی است چه مصافدروسی هم با حکم آن چه تمثیل دریاست و هم چیز تشیع بوده و اختلاف علت اختلافو با محمود بیش از هر چیز همین اختلاف مذهبی میگه که بو... کسانی که گفتن فردوسی این بیت، بیتها را برای احترام به مذهب سلطان، سلطان محمود گفته است. آیا محمود را تا این پایه عبله دانستن کسی که نخست مذهب او را ستایش کند و سپس چند بیت پایینتر عملا بگوید حضرت سلطان تو بد مذهبی و اگر چشم به بهش داری دست از مذهب خود بردار و به مذهب تشیع را یا که فردوسی را تا این اندازه مردی خام گرفتند که نخست به خاطر احترام به مذهب سلطان مذهبی را که مذهب نبوده با قلف به تمام بس و سپس با حرارت از مذهب خود دفاع کنه. غیر از همه این حرفا میگه که در بیت نخستین از این چهار بیت. که خورشید بعد از رسولان نه و جسد مبارکه میگه که در بیت نخستین از این مضمون که خورشید پس از رسولان بزرگ بر هیچ کسی بهتر از ابوبکر نتاوید سخنی موعظه کرد البته اینم هست منتها حدیثی که ماشیله قبول نذید این, این حدیث با ندارم بود. میگه و در هر حال در شاهنامه که خورشید از تصویرهای مهم شریعتی به مانندگان بر نمیخورد همچنین مضمون بیت دوم که عمر اسلام به آشکار کرد حتی از دهان یک سنی مذهب هم مبالغه اما پنجام که دیگه اصلا باید تدخاله میگه کاربرد واجه عربی بعد در بیت نخست که نه یک اصطلاح علمیست نه یک اصطلاح نیست نه یک واژه نادرست ولی جز در این محل در هیچ کجای شاهنامه کار نرد در حالی که برابر فارسی آن پس و سپس و از این پس و طیره بیش از هزار بار در شاهنامه آمده است دلیل مهمی در الحاقی بودن این غتن هست همین کلمه بعد گذشته از این که برای اینکه اگر جزء واژه‌پذیر اون روز بود همین یه دفعه نمی‌موند در تمام شاهنامه که معلوم چه اون روز جزء واژگان زبان فارسی اصلا نبوده و مدتی گذشته تا مردم بعد روز وارد زبان کردن اون شاعری که اون شعر رو ساخته در روزی بوده که این بعد رایج شده بعد میگه گذشته از این در این چهار بیت دو بار هم واژه عربی رسول به کار رفته است در حالی که در همه شاهنامه شاید این واژه یک یا دو بار آمده باشد و فردوسی همه جا پیغمبر و پیغمبر و فرستاده و فرسته به کار برده است برای نمونه در همین یک یک ای که در ستایش مذهب خود قدس دو بار بیت های 7 و نه واژه پیغمبر را به کار برده و البته طبق ضبط نظامی عربی در چهار مقاله در بیت 14 نیز به جای محمد پیغمبر دارد آیا واقعا جای تحمل نیست که همین یک در بیتاهایی که در اصالت آنها جای گمانی نیست دو یا سه بار پیغمبر و پیامبر گفته باشد ولی تنها در آن چهار بیت که به دلایل دیگر هم مشکوکند دو بار واژه عربی رسول را به کار برده واقعا جای تحمل نیست که در شاهنامه چند هزار بار پس و سپس و از این پس و از آن پس, پس, پس و آنگاه و آنگاه و آنگهی و غیره بگوید و یک بار بعد نگوید ولی در این چهار بیت که به دلایل دیگر هم مشکوکند بعد به کار بگوید. روزه که از این مطالعه خیلی داره و خیلی کتاب جالبیش من حالا معذرت می‌خوام که وقت دوستان رو با خوندن این که برای اینکه برای اینکه این پای اون مایه کتاب رو در حقیقت بدونیم و توجه داشته باشیم که اون چه من در می‌کنم این کتاب خوب است و قابل استفاده است اینا از چه نوع مطالعه؟ در حقیقت سطحش، سطح این کتاب خیلی از آفرین فردوسی بالا ترید برای که آفرین فردوسی رو ما نوشته بودیم اصلا برای جوانان و آشنا شدن کسانی که داحت دوم سواد و پارسی با شاهنامه فردوسی هیچ کار تحقیق و دقت و این مسائل در اونجا اصلا نظر نده و بنده یادداشتای دیگری که دارم برای شاهنامه فردوسی که در سطح ایلیس و قفش شده درش هیچ وقت منتشر نگردن من و اولین تیکهی که منتشر شده همین شانان و فرنگ آمه هست که اینجای چهار تا از اون یاد یا چند هزار یادداشت داشته بگردن چهار اینجا محصف شده و باید ملازه خواهدن ولی این, این کتاب همچه که عرض کردن سهتش بالاست و مطالب حسابی داره بابا هم در حقیقت عمرش تفتک برشته در این کار باید اسم کتاب گل رنج های کوهن پهیلی با هم گفته که فردوسی یه مثلایی داره گل رنج های گشته خار میگه منم اینا رنج های است که یه وقتی گل بوده حالا جز خار نیست من نمیخواستم این منتشر منشر کنم ولی چسبیدن که حتما چند تا مقالهش منتشر کنم من خواهم بهش نوشت که باقی مقالاتم حتما به صورت جلد دوم این منتشر کن به دلیل اینکه کسی اگر بخواد. مقاله های تو رو دینه نمیتونه هفتاد تا مجلزه این و اون و جهان تلویت گذشتی جهان نو مجلزی مرخ و مجلزی نم بره ببینید که اون چه تو ندشتی چیز کنه حالان که چنین خصطتی هست حتماً باقی مقاله ها تا به صورت مجموعه در بیر فکر رو اصلا منداز بود درست نیست. بر حال گل رنج های پاین های ها بریم سر کار خودم تا کجا خونده من ندارم بیاد مثل که من مثل اینکه که جمشیدو در عوستا آستانش رو نصفش رو گفت نصف مربوط به خش آمدن میزن. نصف دیگرش یعنی وره جمع کرد رو عرض نکرد آستان توفان توفان نو ما میگورم مجددا ارگام نکنن <تصفيق> افثانه‌ایست که در سراسر سر نقاط دنیا تقضیدن، مزایر بود و جاپونی‌ها دارن، اینو چینی‌ها دارن، چه‌های دارن ظاهراً اون که به صورت قصه نو متولور شده، مال تقیان شدت‌العرب یعنی تقیان روت‌های دجله و فراخت که ترخب بارون می و من نمی دونم رفق آمدن سیل دشت همبار رو دیدن یا نهیدن پاک هند و پاکستان که سر هم یکی از سطح، از لب دریا تا هزار مایل که بری به شمال دیویست متر فقط افتفاق بگید یعنی مثل کف دست تا واقعا برنا رو خواهد تراز بکنه اینقدر نمیشه ساخت بعدم یک دفعه چیم خوردگی عظیم همالای ها از ماهان ترزید که یه دفعه میره باید در متیجه تو هم که همالای هم بزرگت همین کوه بلندت همین دنیا پر برد برد بر و میگیره با این برده هم آمشو دوتای پر آب میشه به تو هم دوتای سند و و پنجاب و توکنه های دارن نا همه از خان اینجور سرشیم وقتی این آب ترازیر میشه خیلی جریان آب اولا آهسته است واقعا این رو کنه به طور شما از سنت سند وقتی رد میشید تست میکنم که اصلا این را میره چه آب کسید که دریجری هر هرگزت نداره حتی سن در پاریس هم که لابا رفاقا بیشتر از این سن دیدن همینجوره یا تمس لندن اینا حرکت نداری وقتی آب در اینده ها تویام می کنه سرعت که نداری گواش گواش گواش گواش این هم کم کم یه خوده می کنار این لده کم کم گذاره پوشتر می یه خوده که بالاتر تو خونه تو نشستین یه <LCG> وقت میگین که آب اومد از در تو فلا علیکم. و بعد میگیره میگیره اینجا من بیادم این که سن سنت، سنت سند سند که توقیان کرده بود مثلا تو ماه های قسمت هیدر دریا بود ماهیا ها بچه گذاشته بودن مرقاوی ها توق کرده و من هم یادم اینقدر چیز بعد زمین هم اونجا به ایلانتی که آب زیاده زنجاب شده یعنی آبو چیز نمیکنه آب آبو فرون نمی ما زمین های شنی داریم من بکره کسی که صد هزار سال آفتاق شدید خورده و آب نداشته هرچی بیزن فرون می اونجا که نیست که اونجا گاهی آب از اصلا از زمین, زمین صاف آب زمین مرامین تیران برن. ارز کنم که ما یه خانه فرهنگ داشتیم در راهپندی آب وارون آمده بود و پرشد بود بعد صبح بخواستیم بریم حیات آب گرسد باقچه بود و فاق بود, بود. بود. یک رارو بود آب فرهنگ داشتیم بعد یک مسئول خانه فرهنگی داشتیم که یک خوزه از خودمون بود منطقه یک همی جلو بود تو آقا یک فکری بکنیم، آب اینجا بکشیم، تخلیه بکنیم چه تخلیه کنیم، ما یک رو بکنیم به فرح نظرتون میاد پنیم ولی نمینی مرد است، آب کم تا چشک آنگونه تو آبش کجه بکنیم اصلا عقش نمیرسید تو خوب آقا نمیشه که جا همینه، آب مونده به هر جهت بعد این میاد میاد تو خونه شما کیسه برنجه زیرزمین بدتر از زیرزمین دیگه پالی، پالی، هیچین حرفار دیگه میاد اون تو میمونه و بعد بعد تمام چیزها رو بذاریم رو پایه بلند تا کی آب مهمون سرکار باشه خدا اون و بعد فقط تو کنه شما نمیاد همه جه میره، تو سوراخ ماره میره ماره هم میاد میره, میره، بالا درم مردم زی توهن، پاکستان بارها این انتخاب خوده یه وقتی من در پویان پنجاب بودن و سفیر ما نوشته بود به سرعت و با هواقه ما پویی، نمیدونم چند میلیون سرم ضد زهر از حساره که گفته بسازن، سریع چید دارن، بفیسن، باقی را بسازن، بفیسن بانه که مردم مدبخ میرفتن بالای درخت و مار میگفتن اینه که این توفان دیگه هیچی رو اصلا باقی نمیذاره و هیچ آبم که اومد معلوم نیست که این گره در حالی در توستانی سیلایی که ما و چه های تیران و اینجا تیران اینجه شاهدش هستیم در ظرف پنگ دقیقه مثلا تقیام می گل و لا و یه چیز قلیز وحشتناکی میاد و گاب و گوسفند و مار و درخت و هم دیدم دعاوندم سیلاوت درخت گردو به این گندگی اولا اینو چنان از اون کنار زمین کند رفت خاطی چیز که مثل اینه که مثلا فرض فرمه که شما یه دونه چوکردی که از این گل بکشیدی افتاد توی چیز من نگاه کردم، افتاد توی روکونه ده قدم بیشتر نرسته بود این درخت با اون شاخو برگرده تبدیل شده یکی چوکرد یعنی از واقعا در زن دم کرد، خیلی راحت من دید داشت کاملا میگید این سرطون، این سنگو برخورد و این ثیث تاون از بعدم میره نیم ساعت دن گرم شی نیست از کوشتی شده شده هر که میشوده میشوده هر چقدر سرعت سریزده تغییر تاونش میادش ولی در نواحی داش خیلی طویان باشتن نداره و هر سال این کار میکنم حالی میگه یکی چیز راحتی میکنی تحریف میکنه کنه یکی اینکه از دانشاند فاکستانی پیروسانسین که وقتی این میلیس بودن در اینجا با ذهکشی و با تدبیرهای مختلف و کانالیزه کردن آب آب تحتل از بیر برود رو ده متر باید این کانال های یک که یکی دیگه یکی داخون کم کم آب تعدل عرضی از در متر شد نو مترو، نو هشت هفت سالایی که من اونجا بودم، که 51، و یک، خودمون بود هر سال یه مقداری از زمین پاکستان کچل می شد یعنی این آب ها می میاد بیرون، رو زمین می بعد بخار می شد، و لای و روحصوب املاح میمون زمین شور میشد و دیگه قابل کشنم جمعیت هم از این رو فست و فست زیاد میشد از زمین رو کم شد بعد هم این رو بسیار دشوار که زه کشی بکنم و زمین شور شده میکنم در حال ارز کنم که ظاهراً افتانه توفان عبدونو هم یه چنین, یه چنین حادثهی بوده خیلی از این که در شهردالعرب و در لبایی بینون نهرین اینجاها اتفاق داده و در هماسه گیلگمش هم اشاره این شده وجود داشته منطقه برچی در افتانه های مذهبینه صورت سمبولی که خود کردم در چین و ژاپن اینجاها ما هست از در همه جا افتانه های هست و در ایران چون خوارندگی نیست که به اصطلاح توپان توفان به صورت باشه جز در شمال در ایران قصه مربوط به توفان برده و میگه که از دا به جمعی خبر داد که احریمان قبار خود است تجهیز کرده و قرار است که سرما رو بر زمین مسلط کنه در زم هم به شما بگم که مثل اینجا اون هم در جلیسه که وقت صحبت میشه از جادو که حالا تو این مقاله به دقیق تر تر با شواهد متحجد که ستون فقراتش نزول سرما. اساس کار جادو تو شانده روسی دیشتایی کنارش دیش دیش دیش هم داره هم. ولی اساس قضیه سرمان تن یعنی سرما رو احریمنی میتونم و احریمن خودش هم که بیخون بردتر هستم یه قرار است که احریمن یه حملهی بکنه سرمان رو مثلت کنم بر و خواه و تو باید یه باقی در زیر زمین بساید به نام ور که در اصطلاح معروف به ور جمع کرد جمع کرد یعنی جم ساخت کردن منی ساختن بارم که وره وره جمع کرد معروف بعد اندازه های این رو میده که طولش چقدر باشه، ارزش چقدر باشه، پنجره چجور داشته باشه، از کجا نور بگیره، چه بکنه، چه بکنه، بعد میگه حیوانات مزهر و مطلقه داریم، این چیز نمیبری، حیوانات مفید رو از هر کلومه ما، به در دفع میبری، تونه دونه جزئیات و شده که در همین داستان جمع هم حتما هست، من فرصت نکرد میگاه کنم، ولی در عوضا هست و ه و مرد پوش پشت و پوشی به دندان و نمیدونم آدم هایی که خلاصه یک گذینه که کسانی که نوخان باقی بمونن چه جانوران و چه انسان موجودات سافوستر و صورتر و برگذیرتر و به صورت با ارزشتر اینا باشن اینا رو بیارن اونجا و در اون باغ به سر ببرن تا وقتی که این و این همده احریمند باید از جمتی ده ها یه آقایی که گویا به مقیم سویده یک کتابی نوشته جبونیست تحقیق میکنه کار میکنه خیلی هم جبون خوبیه اسمش هم مستعار معلوم. یادم نیست کتاب برانده ترسده و تحقیقاتی کرده در این که محل این ور اینا کجا بوده؟ بچه آزربایجانیه و جزیات نقاط آزربایجان به خاطر داره و میدونی که به از خریه سنتی گفتن که درداشت مال آزربایجان روایت این که مال خراسان هم هست هست و حقیقت اینست که ما عوستایی رو نمیدونیم مال تو اون نایی ایران بوده حتی اسم این زبون نمیدونیم اوندفع ارز کردم که اسمش رو دانشمندان گ درست مثل اینکه زبون عربی به قلبی از به این بره، فقط یه سند به اون قرآن یکی کسی نمی‌دونه اسم این زبون چیه که ناشارم زبون, زب... زب... زبون قرآنی یه همچه اسمیه، حضا زبون خودش که از کشتی ما خبر نده همچنین از فارسی بازمه، اونم فرنگی ها در هر صورت، او تحقیقی کرده و ساعتی یه جایی رو نشون میده میگه اینجا جایگاه برکن و یکی هم هنگ افراسیاب اون کاری که افراسیاب بهش فنا ورده بود که بعد گرفتار اون هاو معابد میشه و میگیرنشو دستگیر میکنن و لا به سزای اعمالش میشه او رو هم جایشون اونجا نشون میده و شواهدی میاره بود داستان هایی کتاب تو انبوهی کتابام که متاسفانه او هم, هم ریخته در قفسم ندارم من کافی و بعدم به هم زدن در الان اگر پیدا کنم اون کتاب نمونهشونو و, و, و بساتشو براتون میارم حتماً ولی یک کاری شده است و هر حال یک داستان همون فصل دیگری هم که در شاهنامه اصلا نیست در, در عوست آمده داستان وره, وره جمع کرده که او هم در شاهنامه نیاد در ضمن اینجا این آقای دکتر خالفی بحث میکنه که بعضی روایت ها هست بعضی قطعات الهاقی هست که گروه میگن که آقا این روایت اصیله بله، روایت ممکنه اصیل باشه برای اینکه یه دست روایت های و فردوسی به دلائلی فرو گذاشته تو کتاب های دیگه سبت شده، از جاهای دیگه بیرسه ولی اصالت روایت ربکی به اصالت سرود شدن و وسیله فردوسی نداره بنابراین داستان های زیادی هست، مال اون روزگار هم هست ولی شما در شاهنامه اینها رو پیدا نمی کنید. شما اینکه اون چراجی رو جمشید من خدمت در شانه حالا برمی گردیم به اون چه در شانه هست چونی بران جهان را همه پند اون سوگ من به سوگندران شد دل هر کسی نی آمد بران روزگاران بسی گران مایه جنچی پردنده اون همه بست یک دل از پند اون مر بر آمد بران تخت فر رخده به رسم کیان بر سرش دا زر کمر بسته با فر شاهنشهی جهان گشته سرخاصه رو را رعی زمانه برآسوده از داوری به فرمان او دیب و مرخ و پری جهان را پوزوده به دو آدرو پروزون شده تخت شاهی به دو منم گفت با فره دیزدی همم هم شهریاری و هم موبدی بدان تازه بد دست کتت کنم بدان را بدان را دست دست کنم روان را سوی روشنی رک کنم نخست حالت جنگ را دست بود در نامزستن به گردان سپود به فر نرم کرد آهنا آ چو, چو خود و درک کردو چون جوچن و خفتان چون و همه کرد پیدا بر روشن روان به اندرون سال پنجاه رنگ سال پنجاف. سال پنجاه رنگ ببرد و از این چند بنهادگر بسیار. بسیار عرض کنم که اینجا ملازم که میگیر جمشید به سر تعمالتی در حوستا جمشید به سر شخص است به نام دی‌بنگ‌هایی و هیچ رفت به تحماسی دی‌بنگ نداره ولی خب دیگه بعد هماسه ملی و از که چیزی شد این برای خودش ستیل تازه تصرفاتی می‌کنن و به این صورت برای دیت یه توالی منطقی پیدا این است که جمشید و پسر, پسر تحماسید بانستن که برای کدرش می‌شینه تحماسید تو گیه که سر آمد برای اون جهان را همه قمده اون من به سوگندرم شد دل هر بسید نه ی آمد بران روزگاران بس. مدباری نداری که اون درستان گران ماه جمشی پرزند اوی کمر بست یک دل پر از پنده یک دل یعنی سمیمی و مرتقل با من سنما دل یک دله کن گرد سرنه هم آن یک دله برا آمد بر آن تخت فرخ بدر به رسم کیان بر سرش تا عجیز کمر بسته با فر شاهنشاهی جهان گشته سر تا سر او را رسید باز چیزی نداره کمر بسته یک دل پر از پر از تمدغوی. این کمر بسته هم به معنی کمر پادشای بستنه هم به آماده بودن کمر بستن به آماده بودن کمرو از دیگه پر از پنده زمانه براسود از داوری یه معنی داوری دعوه مرافر آجافز میگه یک حرف سوفیانه و دیگم اجازت هست ای نوره دیگه صلح به از جنگ و داوری داوری به دا معنی جنگ البته اون معنیرم که میدونید فرجاش هست این که زمانه از داوری یعنی گرفتن به فرمان اون دیو و مرغ و پری این یک جیه از نشانه که بعد جنسی رو با سلیمان چیز میکنه؟ خاطی میکنه ولی اینکه او رو هم برای او هم یه چنین قدرتی در نظر داشتن البته مثل که عرض کردم سلیمان در کتاب مقدس یهود جزء پادشاهان و جزء پیغمبران نیست و خل... حکیم هست خداوند حکمت به او ارزانی داشت تا توفیق الحکیم نویسنده مستی نمایشنامه ای نوشته به نام سلیمان الحکیم حکمت داشته بعد در قرآن هم آمده است که واسعه نو سلیمان الحکیم حکمت بود این در تورات هم آمده است. ولی جزء پادشاهانه اصلا جزء پیغمبران و خلعت پیغمبری فیغمبر، رو این اسلام و قرآن به دوش سلیمان هست زمانه بر از داوری به فرمان رو دیب و مرغ و پری راجه عرض کردن که اونطور اونطور احریمانی بوده ولی در تماسه مدیمات از اون حالت خارج میشه و حالت بله او رایی میگی اگه میگیر نمیگیره که نمیگیره ولی به هر حال چیز میشه از اون حالت خیلی بد میاد بیرون جهان را فضوده دو آب دوی روزان شده تخت شاهی دوی. منم هم گفت با فره ایزدی هم هم شهریاری یا هم موبدی این باز مسئله مهم نیست و میده که در آغاز کار چیزه راه، حکومت دین و دنیا در دست یک شخص. و چیز عجیبتر اینه, اینه مطالب ایست که مثلا ما نمیدونم باید من در دوره دفتری افلکارت مرموم اصدادم اینو پر فرمودن و بحث فرمودن را دیده امام و که محمولیت الهی داره و جانب خدا من میشه یعنی پیغمبر نخود کن امام وردش منصوب میکنه و امام هم جانشون رو خوبستعی میکنه و این انتفاب الهی است امام پیشبای دین و دنیای مومنی و سر این که علمه های مذهبشیه تمام ها رو قاسد میکنست سر این که پادشانان سفردی از با اینکه خودشون مرشد صوفیه بودن چه بودن چه بودن از آخونده اجازه سلطنت می گرفتن و سر اینکه جای قاجار با اون ریختشون شاهل اشتراز بلند کامد اجازه سلطنتشو از شیخ جعفر کاشو بلغتا می گیره به اصطلاح باقیقت نایب علمای دین مجلسی هم بادشهان صفحهی رو به انها نایب خودش در حکومت منصف میکرده از وقتی آخوان بوده این علتش این بوده است که این انصار دین و دولت با هم آمیخته بوده از قدیم الایام و تا در ایران به خصوص در ایران به خصوص این همینجور ادامه داشته یعنی اعتقاد به امامت موجب این بوده و اینکه که وجوهات و تحریف کردن که مالیات ندیم نمی‌دونم. دولت آسفالت فرسان خیابونه خیلی خوب اما شما مالیات بهش ندیم محروم رو بگیم گیری میدیم به ما یا همه اصطلاح نشان این است که اون مسئولیت رو قائل نبودن برای اینکه حکومت حرف امان این سابقه خیلی قدیم داده میدین از دوره با و یا اگر درست یادن باشه در زمین گفتاره عوستا اگر یادم باشه جمشیر وقتی که صحبت میکنه یعنی مناجات میکنه در با احور و با سخن میگه اونجا احور از اون میپرسه تو میخوای که من پیغمبری به تو بدم که ریاست دینی مردم رو داشته باشی و مردم رو ارشاد بکنی و هدایت بکنی یا میخواهی پادشایی بکنی یکی که بالا من استعداد پیخنبری کردن ندارم ولی اینجا الان که حرف میزنه زنه ملازمی کنید که من هم گفت با فرده هم هم شهریاری و هم موبدی موبد، بعد حت در فهلگی و در فارسی باستان تایی به نحنی سر و سرور و سالارو یکی در فارسی باستان دو تا فیتی داریم یکی یعنی زد و مخالفه به صورت پاد در فارسی هست پاد زهر یعنی زد و زهر و یکی دیگه هم فیتی یعنی سر و سروره که در فادشاه باقی مونده از یه طرف به صورت پیش و به صورت بعد. در بسیار کلمات سپحمد و هیربد و موبت و خوبت و امثال اینا که بعد هم کم کم میزیدین ایسای دوره قاجار و بعد هم دوره پهلوی بکردن که این بد بده که گذاشتن بود برای اینکه ما هم بده و زده خوبش که نشید در حالی که ما سنت داریم این بد تلفزی شده بدون هیچ کفته دوی. و این تصورم به نظر من خیلی تا عاده دلانه برای اینکه مگه شیر و شیر با هم اشتباه میشه بگی یه لید شیر خلیدن آدم خونه فکر میکنن که شما شیر در رنده آوردی این اصلا چه تصفیر بیخویی بعد هم همتون یه بیکی داره و شاهنامه تا که میتونی شب برداشت پردزه در درداشتان در سیاوش بلاخره حضور تو داوه تحریق می‌کنه شوهرش بابود که که من این پسر تو می‌خوام ببینم چون نمیاد کاراش نمیاد ببینه چون حرام نمیاد چون حرام نمیاده، چون بره yes. ]fallen. یعنی بو برده بوده که این رفتنه به حرام سراوینا <PT1> yes. آقابت خوشی نداره مثل که هست می‌گه که نه تو با بعد یه برو، حرام می‌گه تو برداشت پردزه در بعد. یاوش همی بود، ترسان اوزه برد میزید اگر بخونوی هیربود، این شعر قافیه ندهد بنابراین به طور حتما در روزگار فیضوتی، این هیربد و سفه بد و کفت و, و موبد و امثال اینا بسایم گفته حالا هم که موبد میگن یا موبد میگه اونو موبد نمیگن اون یه عیب دیگه پیجه می کنه ولی که او با او درست نمیشه که اون دیگه اونجا شده موبت یا موبت تشکالی جدی کرد. بعدال موبت هست مغپت یعنی رئیس مغان مغم او اینجا که قبل از دین زرداشتم منی روحانی بوده ولی روحانیان دین داشتم. در اصطلاح لعاقل در عدر فارسی مغ میگن و مغان چیزا هستن اصطلاح عرباب مذاهب ایرانی، احیانا شاید کسان که مذاهب دیگر ایرانی هم بودن، شاید مغان میگفتن، ولی بیشتر شیز الانم الان هم که موبت میگن رئیس روحانی، یعنی زردوش میگن موبت، و موبدان موبت که رئیس کل دست روحانی بوده در روزگار ساسانی. بدان آن راز بعد دست توزه روان را توی روشنی رخ نخست دالات جنگ را دست من اینجا در مورد حوشنگ که اینجا حرف نزدیم از کردم که آهن را اول بار بشر قبل از که استخراج کنه از آسانسنگ ها به دست که ولی خب خیلی به این تقریب همچیز نایابی بود همچیز آسمانی بود به اینکه آهن از بهشت اومده حتی در قرآن منعکسه و بعد هم درنجیب چیزی وقتی از آسمانیات خواست غیر تردیم و ماورای تردیم برایش خواهل بودن من به این دلیل جادونم ارز کردم اینو قبلا و بر سر اونه میخوام برم راجع به این جشن صده که چیز میکنه بحث میکنه که دکتر خالدی اینجا چیز کرده گذاشته توی الهاقی ارز کنم که اول میگه که نخستین یکی آتش آمدید به چند آهن آهنز آتش جدا کرد جنگ سنگ سر ماهی کرد آهن آبگون که آن سنگ خارا کشیدش برون چوبش ناخ آهنگری تیشه کرد گراز و تبر عره و کرد بعد دوباره میگه که یه روز مار چیز شده بود و ارز کنم که ماره جست و فلان بعد از این یعنی یه جای نامربوطی وصل شده اون داستان جشن صده که قبلش معلوم میشه اوچنگ یه دفعه حتی آهن از تنگ بیرون کشیده بعد وقت تازه دوباره آتش این است که به این دلیل دیگه ارهاب و هر حال اینجا میگه نخست نخست به حالت جنگ را دست بود دوران جمچی تقسیم میشه به دو دورهای پنجاه ساله و از تعبولات بسیار عظیمی از نظر مردم شناسی در این رو دو میده که کار سال و نیان سه سال و هزار سال و اینا نیست، شاید ده ها هزار سال طول میکشه این جزیات که با طول دول مال، دول مال خودش این مراحل ولی خب اینجا اینا رو مرحصات کردن، درست کردن میگه که اول رفت سراغ آلت جنگه را برای دفاع از خودتون برای که وقتی که جامعه بخواد مستقر بشه یه جا دوستان منتظر نشستن این کارشو بخنون گاغوستن درست کنو دمیش ده کار بیامر درم برن این کار نزد اینی که اولین کاری که می میکنه نخست دارت جنگ را دست بود. در نام جستن به گردان سپر نام جستن یعنی شهرت تلادی و نام شهرت نیکوست به زفر نام یعنی شهرت نیکو و نام جستن یعنی ناعص براودن در پهلوانی رو به گردم سپرد به فرد کلی نرم کرد آهن ها تو خود و زره کرد و چون جوشن آه زره و جوشن با هم فرق منازیم که هم زره زنجیر بافته اصلا تو فیلمات میدید میری زره کنید او رو اول نراثه بعد زره رو بعد روش جوشن آهمه زیده باستیم و اینجوری که از احوال رستم میگه تردوسی میگه بعد از رو خفتانه بر به بیانه روی جوشن تنش میگه اون بهش سلاح کار نمیکرد اما معمولا خفتان عبریشنی بوده و زیر زره و زیر جوشن میخوش اگر شمشیر چیزی اومد از رد شد این ابریشم اولا که نرمی و گرمیشو مقاومت فوق العاده اش که بدن مجروح بشه با اون چیزه بدن نرم دیگه با آهن که نسبتی نداره بعدم داغ میشه تو آفتاب واسه جلوام داغیرا میگیره هر حال برای هزار کتاب های داستان های عوام هم می نویسن که اول برای نرمی و گرمی ها فیراهان حریر روی همدی تمشده بعد بعد میگذشت خفتارو زیر ولی ولی ببربیان رو رستم در روی لباسش می‌بوشه و مفصلاً مقاله مفصلی هم در همین کتاب راجع به ببربیان هست که کاستون رو در هر صورت زیره اون اون چی هست با زنجیرهای بافندگی تایید می‌کنن و طبیعی است که هرچه بافتش شیر باشه مرغوب تر و میدونید که صنعت داوود پیغمبر معروف بود که داود آهندرده تو کسیم این و زره میتونه و در بعضی داستان ها نقشونده که زرهی که داوود فاخته بود دست کنم فرقانوش داره به هر حال اون مطلب رو بزنید کنار بلی به طور کلی زره بسیار مرغوب خوبی که چیز میشده معروف بوده به زره تنگ حلقه داوود. زره تنگ هلقه یعنی چیز باشه که از اون جف باشه و چیز خیلی گره گشاد نه باشه بیده. مثل هر پارچه و هر باختی که هر قد ریز باختر باشه پارچه. دفر پارچه. دفر این الف هم پارچه به فر پارچه به فر که این هم کرده آهنه این علف هم میوار کردن بهش میگن الف اطلاق میگن برای اینکه هیچ معنی خاصی نداره برای آهنگ دادن و زیباتر کردن بیت با همه گل‌ها ساخته نوها راه شد کی کی باغ رنگین شد از قیدی و آزاد رده بستن به واقعندر گلها و نکون جامعه ها رنگین چون لشکر نافلیون ها سرخ گل خنده زد و مرد شباویز گریز از برز رود حرف تا غلط جیهون ها الافه. این الف اطلاقش میدن الف های دیگر هم داریم یکیش که الف ندا که همه میدوند یکی دیگر هم الف ترزیم الف ترزیم مثل ضمنی مقاله یک بزرگا مردا که او بو علی بود بزرگا مردا که او از ورود برای شاه به فر که این امکد آهن تو فولاد رخت و, و تون تو کنا تو خفتان و تون و برگستوان برگستوان دره است به تحصیل هایی که می جنگت نام از این ها همه پیدا به روشن بران اندرون سال پنجه رنج ببرد و از این چند دنها بگم باشد بگم دیگر دیگر جامعه کرد که انگام من که و ابریشم و موی خد نکرد کرد و فرمای دیبا و خد بیا موخشان رشتن و تافتن به تارن در اون را بافتن چو شد بافته شفتن و دوختن گرفتند از اون یکتر آموختن چو این کرده شد ساز دیگر نهای زمانه به دو شاد و اونید شاد. هر پیشه انجمن کرد مرد به دینندران انجه نیز خرد که آتوربان خانیش به رسم پرستندگان دانیش دانیش دانیش جدا کردشان از میان گروه را جاییت کرد خور سفی بر کشیدند و بنشاندند همین نام نیساریون نام نام نیساریون کجا شیر مردان جنگ لشکر و کشبرند قدیشان بود تخت شاگی به و ودیشان بود نام مردی به جا بسودی تدیگر گروه شناس کجا نیست از جهد بریشان سفاد بکارند و برزند و خود بدروند، به گاه خورش سرزنش رشنون فرمان تن آزاده و خرده نوش ز آقای پیغاره آسوده گوش آسوده گوش آسوده تن آجاز و آباد و دیتی به دو تن و آباد و به دو بر آسوده از داور و گفته گوش چه گفتم سخنگوی آزاد مرد که آزاد را کاهلی بنده کرد چهارم که خانند از خشی هم از دستورتان با سرکشی کجا کارشان همجنان پیشه بود روانشان همیشه پرندیشه بود به اندرون سال پنجاه نیم بخورد و ببرزید و بخشید چی؟ هستان هستی میگه در پنجاه دوتون بندشکه جا میکرد در هنگام نبرد ننگ زد نامه نام شهات نی که ننگ شهات برد و معمولاً به دوستی و هم یعنی که منگور هم به کتان و عبدیشمو می روی قذب قذب باستیش کش معرفش قذب شرم عبدیشمو شرم عبیشم دوده که دو و دوده یعنی که به عربی یعنی در حضم معرب برای این که که عربشم نداشتم دارم که دود نداشتم نداشتم که عربشم نداشتم عربشم نداشتم ناچار وقت یه چیزی میاد اونجا اسمش هم باش میاد بگه همیجور تو الان که ترانزیستور کامپیوتر میاد اسمش میاد این است که قض آمدید یعنی به ما، شما جوز زلغاست یعنی پیده. جوز یعنی چه؟ جوز زلغاست یعنی پیده کی که جامعه شروع کرد؟ درست کنه از چی؟ از کتان کتان گیاهی ساغش دارای که بسیار نازک یکی هم شاهدانه از رابط شاهدانه علاوه بر اینکه دانش از بهترین دانه های روغنیه روغن خیلی مفصلی داره و احل عشقم به هر حال بهش دل بلکی داره اینا برای داره که نوع خاصی از شاهدانه است. هندی ساقه‌شن یا ساقه‌ش که بلند می‌شه توی این سابه اون نازوکی که دیدیم باید مثلا 600 تا تار نازوک مکم زریف بشن اینو این این باید اینو، رو می‌ذارن باقی پیش این تارا نمی‌سه دید روزی چیزی کسیدن یاد هر توی ویدیو که حالا و که این واقع این البته مرخ بسیار ضعیفتر هم داره که میشه کنف های بسیار قشنگتر یعنی با افت ازش درست کرد که خب آه توجه رو به کنف و هشیش رو هم بهش میگن کنبین ماده ماده مانفتری که یا هشیش میگوید بهش میگن کنبین که میگه ماده شده نیست که پرمونش هم معلوم نیست یعنی هم اسلام هست کنم که كنب و و این کسی می خواهد می کنه اونجا می و کنه این دی که کنه بیسی این روغنی هست ساقش هم چیزه. ساقش هم علیاب شده علیاب شاده و ازش کتون می بهترین های دنیا هم از مصر می در پنبه که می دوید او هم منشه گیاهی داره منطقه او چیز نیست او تخم هست دو پر اون تخم بسیار موجود تخم فنبه هم از دانه‌های های بسیار بسیار غنیه و این روغن نباطی اغلبش روغن توفنبه هست این باقیش هم این توفاله که میمونه همه این همه این دانه های روغنی توفاله که از این بهترین خراش در دامه هست خراش چاپانه هستی سرکی که توفاله که میمونه برای آدمیزات مطلب میشه او روش مین ارده ارده که باشه حلوه و ارده میتسازن یا ارده و شیره ارده اینجا هم اگر یه وقت بخان تخنیم بشه میگن تحینه یعنی تاهمه به عربی با تای معلق و ایوتی تاهمه یعنی آسیاب و تحینه یعنی آسیاب شده اونجه که آسیاب میزنن روغنش کنگیرن باقیش که پروتئین خیلی سرشاری داره بسیار چیزه زیادی داره. این که گذشتگان، چهار مردم فقیر ما خوردن و هلورده می خوردند با جوابشون رو هم به دلیل بدود اون او که در کنجه مرحال کنجه هم خیلی دیونتر اینا و همین که تفارش رو به نمیده ولی کنجاله ی و بذرت و شاد که با های ما هم رو برای به بسیار بسیار و دانه‌های روغن خاشخشی، روغن خاشخش برای بینش به بگذاریم که سکتان و آبیشم و موجتاز کاساب چریک، کاساب جامعه تانو. به رحنی نگم هم به رحنی جامعه ای کتانی چیز میگه که در تحرید شیرین میدونین که گفتن که کتان او یا خوراقاته روی برایان اعتقاد رو همتا من کتاب کلاس کتبان است یادم کتاب کتبان بزارتی نمیشته بود که گویان کتا، کتان در ماهتاب می پیشن. نظامی در شرح خصوصی این قصب را رخنه یاد اینه که سویده ماه رو داره و همیتی از که قصب رخنه بگیم دانه اینه آشغات هشت صد قصب را, رو قصب صد قصب را ای بر روح نیاد برحال قصاب به منی جامعه کتانی که کتان و عبدیشان امون یک قصب کرد و دیبا و خند دیبا هم پارچه عبدیشانی کلو این که از هم بود نفاشی ناشتکاری میبنن خاشه هایی الان الان در این سال ها سرن هاست در, در ایران عبدیشان نامرخوب سمبینه توش نگم گج به گج به برد و یه مثل هم هست می‌می‌می‌گن کجه مثلا چوبه کجه جواب سرولازه‌ها می‌گن کج به نت عبدیشن یعنی نوع کج و کج نوع این که همین پارچه‌های مثلا کلوب‌تر و که مسارف عملی‌تر یعنی جمعه زیناتی‌هایش بدیشی جمعه عملی‌ش این رو با سجدی ساختن و بی بشنی با پاشه هرشونی پروک و استبرک استبرک این سطح عبر شده استبرک بر قرآن هم هست اونم باشه پروک سهر بشنی هزم ازمه استاندار که این گرم داره این پوشتش نوع نرمون خوب داره و بیبون رو میگرفتن سهمور هایی که اینجا با تومشون بید رو میشکنن و حسی که این برای ما نیشکی به حرفشون نمیزده اینها رو نهستشون رو هر این گفتن در قرد میده اما همشون پیسشون از سر چون میکشکن و خوشین و رو همسال نوستن برا ده کتان و عبریشم و موگ دز قصب کرد و پرمای دیبا و خرس بیا موگ چند رشدن و تاستن اول ریسیدن و ریسی و تاویدنش بعد به تارن در اون را با تار نخواه و پود و این حتی در اسطلاح در اسطلاح قرون دیگر هم همینطور حتی من که اگر از راه چوب راه برم بوادی فضر می بس ببود اگر از راه دیگه بخوایید ببوری میگم خجد کن بعد موقع رنگیدن اگر از راه انتراها کیوب برن میگم برم اگر بخوایم از همر برن میگم راه پود برن. راه پود حربتی میگم راه پود برن. راه پود برن, برن. برن. برن یعنی از راه پود بنابراین حتی برای بافت پارچه بود بافت ا تار و پود مستند با موج می‌زد چرا بیاو من رشتنم که تا اندرون بود را چه شد باخته شستن و دوختن گرفتن و دوی سر آمدتن چون این کرده شد ساز دیگر نهاد اینا همزمان اتقامیتا می کنم ارز یکم قرنها و ازاره ها هم سور بکشه ولی که هرها این جب مرفت چکنم زمانه به تو شاد اونید شاد هر پیچه ای انجامن کرد مرد به دین اندرون پنجه اینجا تحسمیم جامعه به سبقات قبلا باید ارز کنم که در تمام اجتماعات باستانی از جمله در هندوستان که به کلی یکی بوده سه طبقه یکی روحانی یکی استفاهی یکی هم کشاور و متعلقات و اصلا تحصیل طبقات استفاهی حالا اینجا بعضی ها خیال کرده اینجا صحت داره که مثلا یه روزی جمشید اومده یه جمع کرده باید گفته خب شما سه نفر توانی باشین شما سه نفرم که هر باید باشیم، شما زن کنیم، شما هم و حلک چنین چیزی نمیتونه وجود کشت اول، افراد که وجود در جامعه، کارها، مشاهد، هر میاد و استفاده می‌افته که گاهی افراد طبقه دخالت می‌کنن در سار طبقه دیگر اون وقتی که قدرت منتظی اگر این کار صلاح ندونه مرز هر کدوم این طبقاتی که قبلا پیدا شدن تایید و در اینجا همینطور هم یعنی در روزگار جمچی طوری بوده که باید مرز در ایران اولا استثنان هستان چهار درمست، اون که دیگه ولی در همه جا، این جامعه شناسی، باستان شناسی، قدیم و مردم شناسی، اینا رو که میدینید صنعت و دست و به قول فردوسی هنوز به جایی نرسیده که بشه به صورت که این طبقه روحانی بود و سپاهی بود و پشابن. در این روزگار که اینا رو تقسیم کرد یعنی یک چیزی که به وجود آماده بود و زای تداخل اینا در همدیگر دور زحمت می که تا آخر هم شده بغان زمینداران بزرگ بودن بعد از زیر مالیات در میرفتند رفتن پدر رعیت در و همه اون پایتوست می کردن نفیجه شم اون سخت از آرام. نظامی ها خلاصه داستان این این این شش برای که این کناغات رو تعییم بکنن و یه بزرگ مردی فکر کرده بود که زهات اومد طبقات از همزین برداشت و بعد دوباره بعد از زهات جمشید اومدی گفتش که غلط کرده من که این کن رو برداشتی دوباره طبقات رو بستن آقا آدم فکریم بکنه که میشه همچنی میشه همچنی علاوه از اینکه اینا اصلا اساتیر هیچ نهمی با با با تاریخ و با حوابیس تاریخ اینا قابل تدیر نیست زحاک عجده حالا میرسیم عجیده هاک صورت دیگر از این زحاک در عوستا میگه عجیده که سه سر شش پیوزه تو شانه هم بقایه این دو سر دیگه هست که که سر چونهش کمار داره سکت این که بد میشین این بحث کرد یا داره فردوسی یاش کرده ظالمش که اینا مشونه پرک میدن آدم از اصل غذر داره که به کلی دیگری است و نخوندن یه دون رساله پنجا سخهی مردم و یه خورده ببینه که این بشر هم راه دور و درازیدتر قبل از تاریخ ساحل تاریخ در که اینجا برسر این مطلب به هر پیچه انجام از مرد که پنجاه سال بحث کرده جامعه رو, رو باز تجار حد و مردش رو مشخص این،, این اسم این طبقات هم در شاهنامه ها بسیار بسیار تسکیف و تحریف شده و حالا خدا پدر کالوزید که اون اولی گروهی که بان خانیه شده کاتوزیان گرور که کاتوزیان خانیش به رسی پرستندگان دارنیشان الان خانواه اسم خانوهی که کاتوزیان زیاده که که از بعضیشون مردمان با استعداده در کی هستن دارید. کلمه تعریف هستن آسوربان یعنی آزربان یعنی آتشبان نگاه دارن دیار. به که آتوربان خانیش به رسم پرستندگان دامیش ته و ته میشه هم در پاسورباز هر دوش نزید آتور اون ز... زال تلفاز میشه مثل ده نمیشه هر دوش دقیقا مثل کیه چمت. خروحی که آتوربان، آذربان، خانیش به رسم فرستندگان دانیش کسانی که در راه عبادت می‌رفتن گفت اینا جاشون تو کوهه هنوز هم در قصه‌ها می‌کنیم که آبی بود در داشته باره پس تو گلستان یه عابد اونجا بود و پاترار هست و گفتش یا اوزو نمی‌اموند و خانشون چند اگر که خبر کردیم که یه گفته و خیلی خیلی دشنیم. که اگر دیدیم که صفایدویتون میشه اختیار با میکنیم برگردیم که میاد میشی و تا لذیذ خوردن گرفت هم تو یا وجود شکنش کسی نو والا یه چیز کلی غذیه رو برگوشیم این است که این مسئله که اینا در جاهای دور افتاده نمیزم دیگه های محصیبی که مثلا چند دیشت به خودی اصلا دیمشن و ما نبیه هم که خلاصه جماعتی که عبادت میخواستن بکنن دل فارد میخواستن خیال راحت و این رو قالباً در جاهایی دیده که چیز نبوده و مردم با چه تشریفات و عادا میرفتن به زیارت اینا بلکت میخواستن، لحمت ولی نمی اومدن به دلیل اینکه اگر می اومدن وارد مردم به دلیل همین احترام آلودگی پیدا می کردن آلودگی سر خود کنو بخورد قدر مردم هم در می که به همطور هم آسولبان به رسم فرفتندگان دامیش جدا کردشان از میان گروه نبقاتو درست نکرد آتوربان بود گروهی که آتوربان کانیش به رسم پرستندگاندانیش جدا کردیشان از میان گروه پرستنده را جایگه کرد کن بپنید هونجا به دعویی که ما مشکول باشید صافی برکشیدند و بن شاندند تو شاهنامه معمولی است صافی باز بگرده است بن حالا مهم صافی برکشیدند و بن شاندند همین نام نیستاریان خواندند هارون دکتر موین در هوشی دور خان حد زده است که این کلمه رشتاریان باشد رشتاریان جای نیستاریان و رشتار مخفف اردشتاق این کلمه اردش هم چیز خاصی است درست مثل کلمه خشایار فواجای خاص رقم انشی اسم شاعر و جزء دومش آرشاد شا. این شاه، اینا که خشایار، شاهه حالا بنده که شاه نیستم اینکه هم خشایار در حال که قسمت اول خشایه یعنی شاه عرشه یعنی مردانه این دو کلمه های بخواهی وسط جید کنیم میشه خشایه، عرشه خشایار، یعنی عربه گشتم وسط یک کلمه دوپون بریدن همینطوره ارتش بلکه ارتشدار بخشه اولش ارته ارت در عوستایی هست رت را. با همون تیه چه راستا، رت را رت را که در فرانسو بریم رو روی یعنی چر چر رت را اشتر یعنی گردونه سوار ارتشتار یعنی گرد دو جوز اش. دو اولش، ارت، اگه بخواهم دونست کنم، شوز دوبامش هم اشتاره، ولی خب گذاشتن باز ارته رو ارتش درست گردن دونست کنم ما رو او داود چقدر عصبانی او در این از این عملیت رشتاریان مخفف ارتشاریان معنی گردو می‌خواد. بنابراین لقب پادشاهی که میگفتن بزرگ ارتشتاران فرمانده اون درست. ارتشداران این گردن سواران، بزرگ ارتشداران هم یعنی روی گردن. درست. ولی ارتش اصلا بدون تارش اصلا معنی ندید ارتشدار و ارتشدار بنابراین حب دادن که رشتاریان باشه ولی در هیچ نسخه ای رشتاریان نیست نیساریانه که معنیه درست، البته معنی کردن نیساریان و همین سپاهیان ولی بچی نیده سفری بل کشیدن نوبل شاندن همین نام نیساریان خواندن کجا که کجا منی که شیرمردان جنگابر هم خروزنده ی لشکل کشید من نمیدونم کلمه تعریب شده است همین همین گرفته هلی همین من نمیدونم نخیر، نمی که نمی. از ایشان تخت شاهی به پای و از ایشان باید نامرگی به جایی پسندگی <تصفيق> بسودی سه گروه را را شناس کجا نیست از کس پریشان ایشان این در حقیق یعنی ملت نفس کسی نداره خودتون کار می کنن خودتون می و فردنش کسی پسو، پسوندی و پسوندی اونم تو حواشی برها من آن یادم رفتی که چیه؟ اونم مرمون به تو مهم پیدای کردی اصلشم دکتراش از و در عداد پاسی بحث کرده اینم پیدا کردی که هر چیز در درده حال این معنی کشاوردان زهانانه که گروه سفومه و گروه هست. از همه قدرته و من یادم حسین ملک، فرادر خلیل ملکی که همون جامعه شناسه بود، دنبال این بازی ها هست رو لمنون طبقات رو تو هند مطالعه دردیف کرده و متحصه کشاوردی هست رو رو نصد کشاوردینا، مطالعه دردینا و تو روز کشنگی در تردیف جمع چهار تردیف کرده خیلی تحجبه تو من هر چه دیدم، چه کنم و همین چه و راستش هم درست شعر در که هنوز پیشه شهری و صنایه دستی و ستوریت به عدالیتهم آهنگر و که ده که ندجار که که آهنگر که این است که این خیلی بعد پیدا شدید از, از راستی سوقات در حال که رومانی و سپاهی قدیم ترین هم. به دلیل دفاع بایا همده هر روز صفایی لازم داشتن روحانی هم برای که هیچ روزی به قول, قول, قول الیاد هیچ روزی بشر بتونه دین در دین زمین زندگی کنه بس در بسیتر باشه این چه بیدینا دی خدا مزید. به هر حال ارز کنم که بسوزیست دیگر گروه را شناس کجا یعنی که نیست از کس بر ایشان یعنی کسی نمیتونه بگه که بیایم مجلیز ما رو بگیم و تشکر از ما بکنیم یعنی کسی عقلی نداره نداری بکارند و و خود بزردن ورزیدن و نیت کار کردنن و بکارم که کشکن بس ورزیدن یعنی کار کردن روی این کشکشون بدرفندم از محصر درویدن درویدن و تردیدن در دروی کردن در بسید ما الان مراقب شروعیم برای این دروی کردن میگیم ولی قدید درویدن میگفتن دروی کردن به هرگیان دفتان بود که به این روز از از این کلعت خاکی قال بدنام خیلی نه تاری به جامان دیگر نفیقی من از شکر احسان تو پر نگردم خدایا مرا بارها آزمون به سوید که از آتش دی نخواهد چه صورت جهانی که در فید نباشد نه آخوار کنید نه گل چه و چه و چه بعد میگه که تو ای نمیم قرآن چی به داست زمین کشته آدمی به داست عجل کشته آدم دبخشید به, به کشته زمین دانه آدمی را نکشته به داست محنوب دروس کجا بکارند و ورزند و خود بدردند به گاه خورش، سرزنش نشددند آقای خود چون؟ محکر ز فرمان تنازاده بود تحت فرمان که کنید تنشون آزاده از تحت فرمان که ز فرمان تنازاده بود قرده نوش نوش به نمیش در زبون ارمنی که چون زبون های ایرانی و زبون های آنوش یعنی شیرین و نوش اصلا شیرین ولی به معنی مجازیه چیزی که به دل آدم شیرین هم باشه به اصلا بچست اونم اون که میدن این خورده نوش یعنی چون چون بعد فرمانی کسی نیسته همه چیزی مرنس هر نمزده هرچی درن خود راحت میخورن وست کنشون گوارانشون تنازادو فرمان بخورده نوش از آبای پیغاره پیغاره بیسردن تنازده آسوده گوش تنازادو آباق چیزی به دون از داور و گفته بود چه سخنگوی آزاد مرد که آزاد را کاهی بند چهارم که خاندن اهدو خشید هم از دستورزان دست دستورزمی اهل سناعت به چوانن تو قضایای باطال چاله میاد روز بعد بعد باز میشه اینم معروض این گفته که تخشان هو تخشان و تخشی به و همین معنی تفکری و در عملی با هو تخش ما هو تخشیده از کجا کارشان هنگنان پیشه بود رب... پیشه اینجا منی سن روانشان همیشه پرند میشه به سال پنجاهی بخورد و بوردید و بخشید سال اون که حتی, حتی رو کنه بعد و بعدا مال باشید که لازم این کار نه خیلی مسئلی آزاد رو کاهیی بنده کرد ارسال من ممکنی کسی هم باشه نه ولی معمولا مسئله این تمثیل یا مسئله معمولا مسئله رو از قول کسی نرزمون کسی ناشناس مثلا دیگه که چه نیکو گفت موبت با سپاهی کدوم و باید و کدوم سفنهایی خدا میدونه گفت با سپاهی چه شرمت نیست رو آن کنت خواهی این چو شرمت نیست رو آن کنت خواهی یا اگه از سر آب رو دوشنی هم غلط میخواه این مثلی آزاد را که بنده کرد مسئله و اینجا از خوب سفنگوه یکی را یکی پایگاه تزاوار بغزی تو بن را دراو که هر کس انداد یکیش را ببینند و داند تا دا هم ام را تندیش امطاع به معنی پات دیده نو را به آب اندرامیفتن خوف را تران چ از گلا آمد تو بشنوفتند سبو کش سبو سبو خشت را کالبت ساختند به سنگ و به جچ دید بیوار کرد به خشت از برش اندسی کار کرد اندسی کار اندسی کار کرد تو گرماوه و کاخهای بلند تو ایوان که باشد پناه از دخارا به هر یک یه روزگاه همین کرده تو روشنی خواد به دست آمدش چند گونه گوهر و یاهوت و بیجاده و سیم و در دخارا به افسون برون آبری چود آراسته بند آراکلی تو بان و تو کافور و تو مشک نا تو و تو پزشکی و به درمان هر درمان در تند و راه من درو که نیامد این فاضل. بسو سال مورد کنم که باز اینجا کاملا نشون میده. سال وقتش صرف کرد تا اینکه هر کسی اندازه خودشو ب یعنی حد و مرز این طبقاتو به حدود معصولیتشونو به حدود اسمالاییتشون بند کرده یعنی طبقه کنه که تا از این هر یکی را یکی پایگاه تضاوار بزید و بند راه که تا هر کس اندازه خیش را ببینند و دانند تنبید شد بعد رو یک پرداخت دیوان که ترس فرمانش بودن ترس که یان و چونم که ملازه فرمانش بودن بیوار بسیدن رشت بزنن و از گچ بکار بودن و بسازند و ترس بسازند. این باز که اخوام آریایی که تحت بودن ساعت کمتون که اخوام که در بودن پاییتر بوده و اینا رو بادار میکردن مثال گرفت. یک بابدیم که من یه وقتی هزاری شب یه قصده میخوندم آخر شب هست که یه یا پاتین احره که بعد زن خلیطه یونان زن پاتین احره یه مردی بوده و او کنم که سلاک بوده و مرد که در آماری زن خلیطه یه سادوری داشت اونان پاتین احره ولی خیلی دست نمیتونه میره یعنی راه بیاه طاقت نمیده، تحمل همه میگه میرسه به یه شهری رسید که مردم اینجا همون نگیره بعد چیز که در چیز شا به من همون نیستم همون چیز رو خیلی همون تضمیم میدم که شما و بعد همون ساخت خلاصه در تس رو ندم و همون ساخت و خزینی گرم و بساط و بعد هم چهار آورد و مجتمع رو داد و گیزی توش میدو چه کرد و فیلی کاربر این بالا گرد. من اون وقت میکردم که آقا ای که این دارت نسر و کارویسی همون نایشن. تو که همون ندیش و رفتن پاکستان در پاکستان هممم نیست مردم تابستونای که میشه دیره این آقای دوله که شده صرفاً چون میمینه؟ شوراً اون میره زمستون هم سرد بشونه یه دبا تو سلمونیا و از جهان نوشته گرم هممم هممم گرم هممم گرم چیه؟ یه جای نیم متر نیم متر درشن فقط پردست توی خون سلمونی یه دون از این منبعه های پیتنزینی هم حالت نیسته آنگی دیدم بالاست اون آب می کنیم پردیشن این بیموس دید این آب گرم چمرکی توی سلمونی می کنیم اونجا خود تو گرمشور می چیزی می میاد میدیم هم گرم هم باید و با کل همون می الوضع تو خونه هایی که ما بودیم یعنی برای دیپلومات ها بود یا برای اروپایی ها بود یا اینا بوده و اینا عجب این هست که مثلا سال زیر استعمار هنگیز بودن مثل آب و روغن با این مردم قاطی نشدن یعنی هرگز دفعه میدن همون که همون رفتن که بعد میسود که به هیچ فکر مقامنه شدید اصلا هیچ ندارن تو خونه شون هم یه جایی دارن و هم قسل خانه لخت این ها تو راخیست مثلا فرض کنید یه متر در نیم جایگاهی ببخشید خیلی عوض میخوا مسترهای قدیمیه ما بیادتون هست که با آجر میشیدن اینجوری گوب دو طرف درشن تو دو. کنید کنید اینو نصب بکنید و صاف ببرن کنار دیوار کنار دیوار, دیوار. تو رو بردن مثل یه نصف مسترهای قدیلی مصادفن تهش هم یه دوراخ انگریز با میشه به کوچه این کوچه به اینجا ببخشید اینا بزای حاجت می. با آب امپورچون چون بر هم به آب نظر تحقیل در مدفد حمد ارز کنم که رخ شو موجود زوارم آبیست می‌کنن زرفشو موجود زدان هم بخوام برن همون تو می‌رن تیمون رو نفرق می‌دفعه شما می‌ده تو أنا میاد تو کن خود بارجی به کن ش کام ش کام شیر پندسر به کن ش کام به هم اول بارارينش ام بعد پنگش به کن ش کام این آب و اون کسافت و اون گوه و اون آب زر و چهرد و همه اینا با هم قاتی میشه و البته ده قدم که رفت ها فهمیم فوزوهل میشه دیگه قاتی میشه به صورت این آب متحصن این کسافت سیاه رنگی همینجور میاد تو خیابون تو جوب های بزرد. خیابون بروشم کسیده از اون گیر میره و بوی تحفانشم هم را حاضار میده باییم یه شاخه چی آب چی بالا میخواه تو آب میز و که وبا همین جور چیز میکنه، کنه اینجور سر بلند می هر چند سال روبار این دلیله در حال بعد من به چشم می دیدم که آقا همه همه نیست و این کسی چون برد برد این نواقبته بنده به علیت دنیا نزیدنی دنیا اونا بشید که این خیلی چیز عجیز نیست اصلا عجیز نیست و هنوز ننوزه نیست پلاسا قصه را اگه خواسته می و این از که اینجا میگه که گرم تا خیلی حیرت نکنیم که آیا هنوز یه شاکه گشت هنوز همونه نداری بله هنوز نداری بله ولی کنم که باشه دیگه. رو